أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراهیم گفت: پس ای فرستادگان خدا، کار و مأموریت شما چیست؟ قالوا ارسلنا قوم فرشتگان گفتند: بیگمان ما به سوی قومی مجرم و گناهکار فرستاده شده ایم لنرسل علیهم شجارتا تا سنگ از گل بر سر آنها فرود آوریم مسومتا عند رب کلی سنگ هایی که نزده پروردگارت برای نشان گذاری شده است. فَأَخْرَجْنَا مَنْ, من پس کسانی از مؤمنان را که در آن شهرهای قاملوت بودند پیش از نزول عذاب بیرون آوردین. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و جز یک خانه از مسلمانان در آن شهرها نیافتیم و ترکنا فیها آیت للذین یخافون العذاب الالیم و در آن شهرهای بیران شده نشانهای روشن برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند بر جای گذاشتیم. و فی از فرعون بسلطان مبین. و نیز در داستان موسا نشانه و عبرتی هنگامی که او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون پس فرعون با قدرت و خیش روی گرداند و گفت این مرد جادوگر یا دیوانه است فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم وهو ملیم آنگاه او و لشکریانش را گرفتیم و آنان را به دریا افکندیم در حالی که او سزاوار سرزنش بود. و نیز در داستان قوم عاد نشانه است هنگامی که تند بادی بی خیر و برکت بر آنان فرستادیم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم بادی که بر هیچ چیز نمیگذاشت مگر اینکه آن را مانند استخوان پوسیده میگرداند واسو سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین و همچنین در داستان قوم سمود نشانه است، هنگامی که به آنها گفته شد مدتی کوتاه از زندگی بهرهمند شوید که تنها سه روز فرصت دارید فعتو عن امر ربهم فأخذته مصاعقت وهم هم ينظرون. آنگاه آنها از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند پس سائق آنها را دربر گرفت در حالی که آنان به عقوبت خود نگاه می کردند فمستقاعو من قیام و ما چنان برزمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند برای خود انتقام بگیرند و قوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین و قوم نوح را پیش از این هلاک نمودیم زیرا آنها قومی بدکار و فاسق بودند وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَمَا آسمان را با قوت و قدرت عظیم بنا کردیم و بیگمان بر وسعت پهناوری آن توانائیم وَالْأَرْضَ فرشناها فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ و زمین را گستردیم پس چنیک گستراننده ای هستیم و من کل شیئیم خلقنا دوجین لعلكم تذکرون و از هر چیز جفت آفریدیم شاید شما پند گیرید إلى الله ای پیام بر بگو پس به سوی خدا بگریزید بیگمان من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر انی لكم منه هنذیر مبین و معبود دیگری با خدا قرار ندهید به راستی من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکار هستم کذالک ماءت الذین من قبله من رسول الا قالوا ساحر او همچنین بر پیشینیان آنها هیچ پیام بری نیامد مگر اینکه گفتند او جادوگر یا دیوانه است به قوم طاون. آیا آنها یکدیگر را به آن سفارش کرده بودند بلکه آنها مردمی طغیانگر هستند فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُونَ پس ای پیامبر از آنها روی بگردان گردان چه تو سزاوار ملامت نیستی وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِنِينَ و پیوسته پند و تذکر بده زیرا که بیگمان پند و تذکر مؤمنان را سود می بخشد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و من جن و انس را نیا فرید مگر برای اینکه مرا عبادت کنند ما ارید منهم من ان هرگز از آنها روزی نمیخواهم و نمیخواهم که مرا اطعام دهند این الله هوا الرزاق القوة المتین بیگمان خداونده است که روزی دهنده است و او قدرتمند استوار است فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ اَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ پس بیشک برای کسانی که ستم کردند بهری از عذاب است همانند بهری یارانشان از ستمگران پیشین پس نباید شتاب بکنند وویل للذین كفروا من الذي پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزشان که وعده داده میشوند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به کوه تور و کتاب مستور و سوگند به کتاب نوشته شده فی رق منشور در صحیف ای گشوده و البيت المعمور و سوگند به بیت المأمور و سقف المرفوع و به سقف برف شده والبحر البحر المسجور و دریای مملو این عذاب رب واقع بیگمان عذاب پروردگارت باقع شدنیست ما لهو آن را هیچ دفع کننده ای نیست یوم روزی که آسمان به شدت بلرزد و به حرکت درآید و تسیير کوها از جا کنده به تندی روان گردد فویل یوم پس در آن روز بای بر تگذیب کنندگان الذین هم فی خوضی العبون کسانی که در سخنان و کارهای باطل به بازی مشغولند یوم یدعون الی نار جهننم دعا روزی كه آنها را بهزور بهسوی آتش جهنم میرانند هذه النار التی كنتم بها تكذبون خازنان جهنم به آنها میگویند این همان آتشی است که شما آن را تقضیب می کردید. ام انتم لا آیا این آتش و عذاب جادوست یا شما نمی بینید؟ اصلوها فصبرو او لا تصبرو سواء عليكم ما تجزون ما كنتم تعملون به آن درائید و بسوزید پس صبر کنید یا نکنید برای شما یکسان است تنها به کیفر آنچه انجام میدادید دادید جزا داده میشوید شوید. این المتقین فی جنات و نعیم بیگمان پرهیزگاران در باغهای بهشت و نعمتهای فراوان هستند. فاکهین بما آتاهم ربهم و ربهم عذاب الجحیم و از آنچه پروردگارشان به آنها داده مسرورند و پروردگارشان آنها را از عذاب جهنم محفوظ داشته است کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید جوارایتان باد به خاطر آنچه که در دنیا انجام میدادید متكئين على سرر مصفوفه و هم در حالی که آنها بر تخت هایی که کنار هم نهاده شده تکیه میزنند، و حوریان گشاد چشم بهشتی را به همسری آنها در بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ که ایمان آوردند و فرزندانشان نیز در ایمان از آنان پیروی کردهند فرزندانشان را در بهشت به آنها ملحق می و از عمل آنها چیزی نمی کاهیم و هر کس در گروه دستاورد و اعمال خیش است و امددنا هم بی و پیوسته از هر میوه و گوشتی که بخواهند در اختیارشان میگذاریم. یتنازعون فيها لا فيها در آنجا از یک دیگر جام شراب تهور میگیرند که نه بیهودگی در آن است و نه و علیهم غلمان لهم كأنهم لؤلء مكنونو همواره پسرانی همچون مروارید درون صدف برای خدمت آنان برگردشان میچرخند اقبل بعضهم على بعض تسالون و بهشتیان رو به یکدیگر دیگر می کنند و از حال گذشته یک دیگر سوال قالو، قالوا اننا قبل فی اهلنا میگویند ما پیش از این در میان خانواده خود از عذاب الهی ترسان بودیم فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم پس خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم و کشندی جهنم حفظ کرد اینا کننا من قبل ندعوه اینهو هو البرر رحیم همانا ما پیش از این او را می خاندیم بیگمان اونی کوکار مهربان است فذکر فما أنت بی ربك بكاهن ولا مجنون پس ای پیامبر پند و تذکرده که تو به فضل و نعمت پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی ام يقولون شاعر نترب بهی المنون آیا میگویند او شاعری است که در باری او منتظر حوادث روزگاریم و مرگش را انتظار میکشیم قلت ربق معكم من المتربصين. بگو انتظار بکشید که من نیز با شما انتظار میکشم. ام ان تأمرهم احلام بهذا ام هم قوم آیا عقل آنها را به این خیالات باطل دستور می دهد یا آنها گروهی تویانگرند ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون آیا میگویند محمد آن را بافته و به خدا نسبت داده است؟ خیر چون نیست بلکه ایمان نمی آورند فلیعتو بی حدیث مثله این کانو صادقین پس اگر راست گویند باید سخنی مانند آن بیاورند ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون آیا آنها از هیچ و بدون آفریننده آفریده شده اند؟ یا خود خالق خیشند؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون آیا آنها آسمانها و زمین را آفریده اند؟ خیر بلکه آنها یقین نمی کنند مردهم خزائن رب که ام هم المسیطرون آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست؟ یا آنها بر همه چیز تسلط دارند؟ ام لهم سلمون یستمعون فیه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينَ آیا نردبانی دارند که از آن به آسمانها بالا می و از آن اسرار وحی را می شنوند پس باید شنونده بر این ادعا دلیل روشنی بیاورد اَمْ له الْبَنَاتُ وَلَكُمُ آیا برای او دختران است و برای شما پسران؟ ام تسألهم اجران فهم من مغرم مثقلون ای پیامبر آیا از آنها پاداشی درخواست می کنی؟ که آنها از ادای آن در رنجند و برایشان گران و سنگین است؟ امعندهم الغیب فهم یکتبون آیا اسرار غیب نزد آنهاست پس آنان از آن می نویسند ام یریدون کیده فالذین هم المکیدون آیا نیرنگ و نقشه پلیدی برای تو میخواهند بکشند؟ از کسانی که کافر شدند خودشان گرفتار نیرنگند. ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما عم یشركون آیا آنها معبودی غیر الله دارند؟ پاک و منظه است خداوند از آنچه شریک او قرار میدهند. و ای راکش فم من السماء ساقطی یقول سحاب مرکوم و اگر مشکان پاری از آسمان برای اذابشان افتاده ببینند میگویند این ابری متراکم است. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون پس ای پیامبر آنها را باگذار تا آن روزشان را که در آن بیهوش میشوند ملاقات کنند یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون روزی که نیرنگ و حیلهشان سودی به حالشان ندارد و نه آنها یاری میشوند و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولکن لا يعلمون و بیگمان برای کسانی که ستم کردند عذابی غیر از آن نیز در همین دنیاست ولی بیشترشان نمیدانند واسبر ل حکم ربک فانک باعینا و سبح بحمد ربک حین تقوم. ای پیامبر برای حکم پروردگارت شکیبا باش زیرا تو زیر نظر و در حفاظت ما هستی به هنگامی که برمیخیزی به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و همچنین بخشی از شب او را تسبیح گوی و نیز هنگام ناپدید شدن ستارگان بسم الله الرحمن الرحیم و النجم سوگند به ستار چون فرو افتد ما ظل صاحبکم و ما یار شما گمراه نشده و راه را گم نکرده است و ما ینطق عن الهوه و از روی هوای نفس سخن نمیگوید گوید این هو الا وحیون یوحه این نیست جز آنچه به او واح نی شود و به جز واح چیزی نمیگوید علمه شدید القوه فرشتی بسنی رومند او را تعلیم داده است ذو همان فرشته نیرومندی که آنگاه راست و درست به شکل حقیقی فرارویش ایستاد و هو بالافق الاعلى در حالی که او در افق اعلا بود ثم دنا فتدل سپس جبرئیل نزدیک شد آنگاه فرو آمد و نزدیکتر شد فکان قاب قوسین او پس فاصله او با پیام بر به قدر دو کمان یا کمتر بود ف الى عبده ما آنگاه خداوند آنچه را باید وح می کرد به بند اش وح نمود ما كذب الفؤاد ما رآه قلب پیام بر آنچه را دید دروغ نگفت افت مارونهو ما یرا آیا با او درباره آنچه می بیند مجادله می کنید ولقد رآه نزله اخرى و به راستی بار دیگر نیز او را دید عند صدرت المنتهى نزد صدة الممنتها أي دها جنت الموا نزد آن درخت است. يرش ما يرشا چون درخت صدره را چیزی پوشاند ماذا غ و م چشم پیام بر خطا نکرد و از حد در نگذشت لقد رعا من آیات ربیه به راستی او پارئی از نشانه های بزرگ پروردگارش را دید لات و عضا را دیده اید و منات الثالثة الاخراه و منات بطه سومی بی ارزش را الكم الذكر وله الانفه آیا شما را پسر باشد و او را دختر؟ تلک ایزا قسمتون بیزه در این صورت این تقسیمی غیر عادلانه است إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ بون اینها چیزی جزنام نیست که شما و پدرانتان بر گذاشته اید و خداوند دلیلی بر صدق مدعای شما نازل نکرده است. آنها جز از گمانهای بد و اساس و هوای نفس پیروی می کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است املی الانسان ما تمنا. آیا انسان هرچه آرزو کند برایش میسر است؟ فلله الاخره والاوله از آخرت و دنیا از آن خداست و کم من ملک في السماوات لا تغنی شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء و چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها هستند که شفاعت آنها هیچ سودی نمی بخشد، مگر پس از آنکه خداوند برای هر کس که بخواهد اجازه دهد و راضی باشد. این الذين لا يؤمنون بالاخاطات لاوسون الملائكة تصية العوس بی گمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نام دختران نامگذاری می کنندند ومالمون بم این یتبعون الا الظن و الظن لا یغنی من الحق شیئه و آنها به آن هیچ دانشی ندارند جز از گمان بی اساس پیروی نمی کنند و یقینا گمان انسان را از شناخت حق بی نیاز فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا پس ای پیامبر از کسی که از ذکر ما رو می‌گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نخواهد اعراض کن ذَلِكَ مَبَلَغْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ این ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتده این آخرین حد دانش آنهاست بیگمان پروردگار تو به کسانی که از راه او گمراه شده اند داناتر است و او نیز به کسانی که هدایت یافتند داناتر است وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ احسَنُوا بِالْحُسْمَةِ و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست تا کسانی را که کار بد کردند به سبب آنچه کرده اند کیفر دهد اکسانی را کنیکو کاری کردند، با بهشت نیکو پاداش دهد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو, هو أعلم بمن همان کسانی که از گناهان كبیره و اعمال زشت جز گناهان سغیر دوری میکنند کنند، بیگمان پروردگار تو گسترده آمرزش است، و او نسبت به شما داناتر است، هنگامی که شما را از زمین پدید آورد، و هنگامی که شما در شکم مادرانتان به صورت جنینهایی بودید، پس خودتان را نستائید و پاک نشمارید. او به کسانی که پرخیز کاری نمودند داناتر است. اثر ایتا الذي توله آیا دیدهای کسی را که از حق روی گرداند. و اعطا قلیلا و اکدا. و اندکی مال بخشید و سپس سنگ دل شد و خودداری کرد. اعنده علم الغیب فهو یراه آیا نزد او علم قیب است پس او همه چیز را می بیند؟ ام لم یونبع بما فی صحف موسی یا از آنچه در صحیفه های موسی بوده آگاه نشده است؟ و ابراهیم الذی وفه و نیز آنچه در صحیفه های ابراهیم همان کسی که وفادار بود؟ اللاتذر واذره <وزرتو> اذرا <از> اخرى كه <كهیج> هیچ کس بار گناه دیگری را بردوش نمیکشد نمی کشد وان ال ليس انسان الا ما سعى و <با> اینکه برای انسان ای جز آنچه سعی کرده نیست وان مسعه سوف يرى و اینکه به زودی حاصل تلاش و سعی او دیده خواهد شد ثم يجزاه الجزاء سپس او به پاداشی تمام و کافی پاداش داده خواهد شد و ام ایلا و یقینا بازگشت همه امور به سوی پروردگار توست و ان هو اضحك و ابكى و, و, و, و, و ان او خنداند و گرياند و و و او میراند و زنده كرد انه خلق الزوجين الذكر و انکه او دو جفت نر و ماده آفرید من نطفة اذا تمنا از نطفه ای چون در رحم ریخته شود و ان علیهم نشئه و انکه پدید آوردن بار دیگر بر عهده اوست و, و, و اینکه اوست که بینیاز کرد و سرمایه بخشید و هو رب الشعرا و اینکه که اوست که پروردگار ستاری شعراست و اهلک عادن الاولا و این که اوست که آدن خستین را حلا کرد و سمود فما ابقا و نیز سمود را حلا کرد پس کسی را باقی نگذاشت و قوم نوح من قبل این هم, هم اظلم و و همچنین قوم نوح را پیش از آن هلاک نمود بیگمان آنها از همه ظالمتر و سرکشتر بودند و, و شعرهای معتفک را زیر و رو و نابود کرد پس آنها را با آنچه سزاوار بودند از عذاب سنگین و دردناک پوشانید ای پس ای انسان ناسپاس به کدام یک از پروردگارت پروردگارت پرورد گارتشکداریه این پیام بر هشتار ای از قبیل هشدار دهندگان پیشین است. اذفت اذفه قیامت نزدیک شده است لیسا لها من دون الله کاشفه و هیچ کس جز خدا آشکارش نکند اف من هذا الحديث تعجبون آیا از این سخن تعجب میکنید واتافون ورات تبکون و میخندید و نمیگیرید وام توم سامیدون و شما هموار در قفلت و حسرانی هستید فسجدو لله و پس همه برای خدا سجد کنید و او را بپرسید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهبان اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت وئی رؤایتی یعرب و سحر مستمر. و اگر کافران مؤجزی ببینند، روی بگردانند و گویند، این جادوی قوی است. و و امر بانها با آیات و نشانه الهی را تکذیب کردند و از هوای نفس خود پیروی کردند و هر کاری قرارگاهی دارد ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر و به راستی برای آنان به اندازه کافی خبرهایی آمده است که از گناهان و بدیها باز می‌دارد. حکمت بالغه فما این آیات حکمت و دانش تمام و رساست پس برای افراد جاهل و لجوج هشتارها سودی نمی بخشد فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُکُرْ بنابراین ای پیامبر از آنها روی بگردان تا آن روزی که دعوت کننده ای مردم را به امر وحشتناکی دعوت کند خوش عن ابقارهم یخرجون من الازدات که انهم جراد منتشر در حالی که چشمانشان فروه باشد از قبرها بیرون آیند گویی که آنها ملخهایی پراکنده هستند مهطعین الى الداع یقول الكافعون هذا يوم به سوی دعوت کنند میشتابند کافران میگویند این روز سختی است کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبادنا وقالوا مجنون و پیش از آنها قوم نوح تکذیب کرده بودند. پس بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند او دیوانه است و با او درشتی کردند و آزردند فدعا ربه انی مغلوب فنتصف. پس او پروردگارش را خواند و عرض کرد من مغلوب شده ام پس یاریم فرما ففتحنا ابواب السماء بمائی منهمر انگاه درخای آسمان را با آبی فرابن و فروری زنده گشودیم و فجرن الارضع یونن فلتق الماؤ علی امرین و از زمین چشمههایی جوشاندیم و جاری نمودیم پس این دو آب آسمان و زمین برای امری که مقدر شده بود با هم درامیختند. و وحملناه علی ذات الواح ودسر و او را بر مرکبی ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم تجری باعيننا جزاء لمن كان كفل زیر نظر و حفاظت ما روان بود کیفری بود برای کسانی که کافر شده بودند ولقد ترکناها تركنا فهل من مدکر. و به راستی ما این ماجرا را به عنوان نشانعی بر جای گذاشتیم، پس آیا کسی هست که پند گیرد؟ فکیف کان عذاب و پس بنگرید عذاب و حشتارهای من چگونه بود؟ ولقد یسرن القران للذكر فهل من مدکر؟ و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود <تصفيق> قوم آد نیز تکذیب کردند پس بنگرید عذاب و حشتارهای من چگونه بود ابسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ماتوند باد سرد وحشتناکی در روزی شوم طولانی بر آن ها فرستادی ذنذعنا كانهم اعجاز نخل منقعر که مردم را از جا برمیکند گویی که آنها تنه های نخل ریشه شکن شده اند کان و پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود و لذکر فهل من مدکر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود کذبت ثمود بالنذر قوم ثمود نیز هشتار دهندگان را تکذیب کردند اند فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه و گفتند آیا از یک بشری از جنس خودمان پیروی کنیم اگر چنین کنیم آنگاه ما در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود ذکر علیه من بیننا بل هو كذاب اشر. آیا از میان ما تنها بر او به نازل شده است خیر بلکه او دروغگوی خود پسنده است سیعلمون غدا من الكذاب الاشر فردا خواهند دانست چه کسی دروغگوی خود است اینا مرسل ناقت فتنتا لهم فارتقبهم و بیگمان ما ماده و را برای آزمایش آنها میفرستین. پس ای صالح منتظر پایان کارشان باش و صبر پیشه کن و نبیع ان ملماء قسمت بین هم کل شرب محتضر و به آنها خبر ده که همانا آب قریه در میان آنها و ناق تقسیم شده است هر که در نوبت خود باید حاضر شود فنادو صاحبهم فتعاقا فعقر پس آنها یار خود را صدا زدند آنگاه آمد و دست بکار شد و شتر را پی کرد فکیف کان عذاب و نذر پس بنگرید عذاب و حشتارهای من چگونه بود؟ اینا ارسلنا علیهم صیحتا واحدتا فکانو که هشیم بیگمان ما یک سیحه آنها فرستادیم پس همگی به صورت گیاه خشک خرد شده ای در آمدند. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ويقينا ما قران را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود كذبت قوم لوط نذر قوم لوط هوشتار دهندگان را تکذیب کرده‌اند انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر بیگمان ماشنباد تندی بر آنها فرستادیم و همگی را هلاک کردیم جز خواندان لوت که سحرگاهان نجاتشان دادیم نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر این نعمتی بود از سوی ما اینگونه کسی را که شکر کند پاداش میدهیم. ولقد و لقد انذرهم بقشتنا و راستی لوت آنها را از عقوبت سخت ما بین داد پس آنها با هشدارها مجادل و ستیز کردند و لقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعیونهم فذوقوا عذابی و نذر و به راستی آنها از او خواستند که مهمانش را برای کار زشت در اختیارشان بگذارد. پس ما دیدگانشان را کور کردیم و گفتیم پس تعم عذاب مرا و تعم هشتارهای مرا بچشید. و لقد بكرة عذاب مستقر و یقینا صبحگاهان عذابی پایدار آنها را فرو گرفت و هلاک کرد فذوقوا و نذر. و گفتیم پس تعم عذاب مرا و هشدار های مرا بچشید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود و لقد جاء و به راستی هشدار دهندگان به سراغ خاندان فرعون آمدند کذبو بی كلها کلها فأخذناهم اخب عزیز مقتدر آنها همه آیات و معجزات ما را تکذیب کردند پس ما آنها را گرفتیم گرفتن پیروزمندی توانا اَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ای قریش آیا کفار شما از آنها بهترند یا برای شما امان نامی در کتاب های آسمانی پیشین است أم یقولون نحن جمیع منتصر یا میگویند ما جماعتی نیرومند و پیروزیم سیهزم الجمع ویولون الدبر به زودی جمع شکست میخورد و پشت میکنند و پا به فرار میگذارند بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر قیامت بعدگاه آنهاست و قیامت سختتر و تلختر است ان المجرمین فی و وسعر بیگمان گناهکاران در گمراهی و دیبانگی هستند یا اووم يصحبون ف نری على جویم زوق و روزی که بر چهره در آتش جهنم کشیده میشوند و به آنها گفته میشود تم آتش دوزخ را بچشید اینا كل شيء خالق بخوادام بیگمان ما همه چیز را به اندازه آفریدیم. و ما امرنا ایلا واحدتون کلمحین بلبطر و فرمان ما جز یک بار نیست همچون یک چشم برهم زدنیست و لقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر و به راستی ما کسانی که همانند شما بودند حلاک کردیم پس آیا کسی هست که متذکر شود و پند گیرد و کلو شیئین فعلوه فی الزبر و هر چیزی را که انجام داده اند در نامه های اعمالشان ثبت است. و کلو صغیر و كبير مستطر و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است این المتقین فی جنات و نهر بیگمان پرهیزگاران در باغها و کنار نرهای بهشتی هستند فی مقعد صدقین عند ملیک مقتدر در جایگاه و مجلس ست و راست دین از فرمانروایی مقتدر بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الرحمن خداوند رحمان علم القرآن قرآن را تعلیم داد خلق الانسان انسان را آفرید علمه البیان به او سخن گفتن آموخت الشمس والقمر بحسبان خورشید و ماه به حساب منظم و دقیقی در حرکت هند و النجم و الشجر یسجدان و گیاه و درخت برای او سجده می کنند و السماء رفعها و و آسمان را برافراشت و میزان را قرار داد اللا تطوو فی تا در میزان تجاوز نکنید و اقیم بالقسط ولا تخسر المیزان و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نکنید و زمین را برای مردمان قرار داد و گسترانید بی ها و ذات که در آن میوه ها و نخل های دار است و الحبود العصف و و در آن دانه برگ دار که به صورت کاه در می و ریحان و گیاهان خوشبوست فبی آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسجن کدامین این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ خلق الانسان من صلصال خا انسان را از گل خشکیده ای چون سفال آفرید و خلق الجن من مارج من نار و جن را از شعل ای از آتش خلق کرد فب آلاء ربکما تکذبان؟ پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت های پروردگارتان را تقضیب می کنید؟ رب المشرقین و رب المغربین او پروردگار دو و پروردگار دو مغرب است فبی ای ربكما پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت های پروردگارتان را تقضیب می کنید؟ دو دریای مختلف شور و شیرین را به جریان آورد در حالی که با یکدیگر برخورد میکنند. بینهما برزنخلا یا بغ میان آن دو های لیست که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و در هم نیا میزند فبی ا بکومت توکذیبا پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت های پرورد را تکذیب می کنید. یا خوج و من از آن دو دریا مروارید و مرجان بیرون میآید فبی ایران بکومت و پس ای گروه انسجن کدامی ناحت های پروردگارتان را تکزیب میکن؟ و له الجوار المنشآت فی البحر کل و برای اوست کشتی هایی همچون کوه که در دریا به حرکت در می آیند تب ای ای آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسجن خدامین نعمتهای پروردگارتان را تقضیب می کنید کل من علیها فان هرچه بر روی است فانی شود و یبقا وجه ربی ذو و تنها روی پروردگار ذو الجلال و گرامی توست که باقی می ماند فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید یساله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او سوال و درخواست نیاز می کنند و او هر روز در کاری است. فبی ای آلا ربکما پس ای گروه انسوجند خدامین نعمتهای های پروردگارتان را تکذیب می کنید. سنفرغ لکم ایها استقلان ای دو گروه انسو به زودی به حساب شما می پردازیم. پس ای گروه انسو جند، کدامین نعمتهای پروردگارتان را تقضیب می‌کنید؟ يا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان أي گروه اگر میتوانید از از کنارها و مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی جز با غلبه و نیرویی فوق العاده نمی توانید بگذرید. فبی ای ربکما پس ای گروه انسوجن، کدام این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ شعله های شواظ من نار ونحاس فلا از آتش و دود بر شما جن و انس فرستاده میشود پس نمیتوانید از خودتان دفاع کنید فَبِعَيْهِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ پس ای گروه انسوجند کدامین این نعمتهای پروردگارتان را تقزید می کنید؟ فَإِذَنْ السماء السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتَنْ كالدهان پس آنگاه که آسمان بشه شکافت پس همچون چرم و روغن مضاب سرگون شود فبی ای ای آلائی ربکما پس ای گروه انسجن کدام نعمت نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید فيومئذ لا يُسْأَلُ عن ذنبه انس وَلَا جان پس در آن روز هیچ جن و انسی از گناهش پرسیده نشود چون با علامات چهرهشان شناخته میشوند فبی آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسوجن کدام این نعمتهای پروردگارتان را تقضیب می کنید؟ یعرف المجرمون مجرمون نبیسی مون و خ گناهکاران از چهره هایشان شناخته میشوند. پس آنها را با موی جلو سر و پاهایشان گرفته و به دوزخ افکنده میشوند. آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسجن، جن کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید هذه جهنم بها این همان جهنمی است که گناهکاران آن را انکار میکردند یطوفون بیننا و بین آن امروز آنها در میان آن و آب سوزان می گردند فبی ای آلائی پس ای گروه انسوجن کدام این نعمتهای پروردگارتان را تقضیب می کنید ولمن خاف مقام ربه جنتان و برای کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است فبأی آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسوجن کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ کنید؟ آن دو باغ دارای درختان و شاخسارهای بسیار است ای پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ و تجریان در آن دو باغ دو چشمه روان است فبی ای ربكما پس ای گروه انس و جن کدامین نعمت‌های پروردگارتان را می می‌کنید؟ در آن دو باغ از هر میوه ای دو نوع است فبی ای آلاء ربکما تکذبان پس ای گروه انسوجن کدامین نمتهای پروردگارتان را تقضیب می کنید؟ متکین على فرش بطائنها من استبرق و جنل جنتین دان بهشتیان برفرش هایی که آسترشان از دیبای زخیمه است تکه کرده اند و میوه آن دو باغ بهشتی در دست رس است. فبی آلاء ربكما ربکما پس ای گروه انسجن کدام این نمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید فیهن قاصرات الطرف لم یطمسهن اینسون قبلهم ولا جان در آن کاخها و های بهشتی هوریانی دید فروهشت هستند که هیچ انس جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس ای گروه انسوجن کدامین جنس پروردگارتان را تکذیب میکنید گأننهن الیاقوت و گویی آنها یاقوت و مرجانند فبی ایی آلاء ربکما پس ای گروه انسوجن کدام این نعمتهای پروردگارتان را تقضید می کنید؟ هل جزاء الاحسان, الا الاحسان آیا الاحسان آیا پاداشینیکی جز است ای ای پس ای گروه انسجن کدامین نعمت های پروردگارتان را تکزیب می کنید و میدونی جنتان و غیر از آن دو باغ دو باغ بهشتی دیگر است، ای پس ای گروه انسجن جن کدامین نعمت های پروردگارتان را می میکنید مدهمتان آن دو باغ سرسبز که از شدت سبزی به سیاهی متمایل است فبأی آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسوجن كدامین نعمتهای پروردگارتان را تكذیب میکنید فیهما عینان نضاختان در آن دو باغ بهشتی دو چشمهٔ جوشان است فبی آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسجن کدامین نمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید فیه ما فاکهت و در آن دو باغ میوه و نخل و انار است فبی ای آلاء ربکما پس ای گروه انسجن، کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید فیهن خیرات حسان در آن کاخها و باقهای بهشتی زنانی نیک سیرت و نیک صورت استند فبی ای اعلاء ربکما پس ای گروه انس و جن نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ حورم مقصورات فی الخیام حورانی که در خیمه های بهشتی مستور نگاه داشته شده اند فبی ای آلائی ما پس ای گروه انسجن کدامین این پروردگارتان را تقضیب می کنید؟ لم انس ولا جان دوشیزگانی که هیچ انسوجن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسوجن کدام های نعمتهای پروردگارتان را تقضیب می کنید؟ متکین على رفرف خضر و عبقرین حسان در حالی که بهشتیان بر بالشهای سبز و فرشهای نیکو تکیه زده اند فبی آلاء ربکما تکذبان؟ پس ای گروه انسوجن کدامی نعمتهای پروردگارتان را تقزید می کنید؟ تبارکت مربک دل جلال والاکرام ای پیامبر نام پروردگار صاحب جلال و گرامی تو با برکت و فرخنده است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. ایزا وقعت الواقعه. هنگامی که واقعی قیامت واقع شود. لیسل وقعت ها که در واقع شدنش هیچ دروغی نیست. خافضت الرافعه. گروهی را خار کننده و گروهی را برفرازنده است. اذا رجت الارض رجا هنگامی که زمین به شدت بلرزد وبست الجبال بثا و کوه ها در هم کوبیده و متلاشی شود فكانت هباء منثثا پس چون قبار پراکنده گردد و کنتم ازواجا و شما سه گروه شوید فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه پس گروه نخوص سعادتمندان دست راست سعادتمندان دست راست چه حال دارند و اصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمه و گروه دیگر شقاوتمندان دست چپ شقاوتمندان دست چپ چه حال دارند و السابقون السابقون و, و گروه پیشگامان پیشرو پیش اولائك المقربون آنها مقربان هستند فی جنات نعیم در باغهای نعمت بهشت جای دارند سلهتم من الاولین گروهی از پیشینان و قلیل من الاخرین و اندکی از آیندگان هستند علی سرور موبونه بر تخت های مرسع متکین علیها متقابلین رو هم بر آن زده اند یاطوف و عليهلَهِم مدان مخاللدون نوجوانانی جادان پیوسته برگردشان میچرخند بكواابون و ااب قو كسمم با قدها و کوزه ها و جامهایی از شرابی که در جوی جاری جایز لا يصدعون عنها ولا ينزفون شرابي که از آن نسر درد گیرند و نه بیهوش شوند و فاكهه من مما هر میوه‌ای که خود انتخاب کنند و لحم طیر من ما و نیز گوشت پرند از هر نوعی که میل داشته باشند ووعم و, و همسرانی از هوریان سیح چشم دارند كأمثال اللل المكنون همچون مروارید پنهان در صدف اینها پاداشی است در برابر آنچه که انجام میدادند لا يسمعون فیها لغوا ولا تأثیمان در آن باغهای بهشتی نه سخن لغ و بیهودعی می و نه گفتار گناهالود اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا تنها یک سخن میشنوند سلام است سلام و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب دست راست چه وز و حالی دارند اصحاب دست راست فی صدر مخدود در میان درختان صدر بیخار و طلح مندود و درختان موز پربار تو تو و ظل و سایه ای گسترده و مائن و در کنار آبی جاری و روان و فاکهت کثیره و میبه فراوان لا مقطوعه ولا ممنوعه نه پایان پذیرد و نه کسی را از آن باز دارند و فروشیم نرفوع و بهسترهایی برافراشته شده و همسرانی گرانقدر این شناهم این ش بیگمان ما آنها را به آفرینش نوینی آفریده ایم. فجعلناابكوا و آنها را دوشیز قرار داده این او بنت شوهر دوستان هم س و سالال لصحاب همه اینها برای اصحاب دست راست است ثلة من الولنكه گروهی از پیشینیان وثلة و عدهای از آیندگان هستند وصحاب الشمالماصحباشملو اصحاب دست چب چه وضع حالی دارند اصحاب دست چپ در میان باد سوزان و آب جوشان قرار دارند و ظل من و در سایه از دودهای متراکم و سیاه لا بارد ولا كريم نخنک باشد و نخوش اینهم كانوا قبل ذلك مترفين بیگمان آنها پیش از این در دنیا ناز پرورده بودند وكانوا يصرون على الحنس العظيم فبر گناه بزرگ شرک اصرار می‌ورزیدند و كانوا يقولون اذا متنا و كنا ترابا وعظاما ا لمبعوثون پس می گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخان شدیم آیا باز هم برنگیخته می شویم؟ او آیا پدران نخستین ما نیز برانگیخته می شوند؟ این الاولین والآخرین ای پیام بر بگو بیگمان گذشتگان و آیندگان لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم همگی در مائد روزی معین گرد آورده می شوند زُمَّئِن <تصفيق> كم ايها الضالون المكذبون سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده لا اكلون من شجر من زقوم از درخت زقبوم خواهید خورد فمال منها من هل بطون پس خود را از آن پر می کنید فشاربون علیه من الحمید انگاه بر آن از آب جوشان می نوشید فشاربون شرب الهید. پس مانند شتران مبتلا به بیماری آتش از آن آب جوشان مینوشید. هذا نزلهم يوم الدین این پذیرائی آنها در روز قیامت است. نحن خلقناكم فلولا تصدقون ما شما را آفریدیم پس چرا دوبار زنده شدن را تصدیق ما نمیکن؟فرائتون آیا نطف را که در رحم همسرانتان می ریزید دیده اید؟ ام نحن الخالقون آیا شما او را میآفرینید؟ یا ما آفریدگاریم نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین ما در میان شما مرگ را مقدر کردیم و ما ناتوان از آن نیستیم علی أن نبدل امثالکم و ننشئکم فی لا تعلمون که همانند شما را جایگزین کنیم و شما را به صورتی که آن را نمیدانید باز آفرینیم ولا قدعل تذكرون و یقینا شما آفرینش نخستین را دانسته اید پس چرا متذکر نمیشوید افرائتون ما تحرثون؟ آیا چیزی را که میکاری أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آيا شما أنرى ميرو يانيد يا ما ميرويانيم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر بخواهیم آن را به کاه در هم کوبیده مبدل می‌کنیم که تعجب کنید بگویید به راستی ما زیان کرده‌ایم بل نحن محرومون بلکه ما به کلی از محصول محروم شده ایم آفرعیتم الماء الذي تشربون آیا آبی را کمی نوشید دیدید؟ آنتم آنذتموه من المزن آم نحن المنزلون آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل می لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون اگر بخواهیم آن را تلخ و شور قرار می دهیم پس چرا شکر نمی کنید افر ایتمون نارا لتی تورون آیا آتشی را که می افروزی دیدید؟ آیا انتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ آیا شما درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟ نحن جعلناها تذکرتا و متاعا للمقوین ما آن را مایه یاداوری و وسیلی زندگی برای مسافران قرار دادیم فسبح بسم ربک العظیم پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را به پاکی یاد کن فلا اقسم بمواقع النجوم پس سوگند به جایگاه ستارگان و وإنه لقسم لو تعلمون عظیم و اگر بدانید این سوگندی بزرگ است این‌هوا قرآن کریم. همانا این قرآنی کریم است. فی کتاب مکنون. در کتاب پوشیده است. لا یمسهون، الا المطهر. که جز پاکان به آن دست نمیزنند زنند. تنزیل من رب العالمین. از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. اف هذا هذ الحدیف مدهنون. آیا شما نسبت به این کلام، این کار کننده اید؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. و به جای شکر روزی خود رازق را تکذیب میکنید فلولا إذا بلغت الحلقون. پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسد؟ و شما در این هنگام نظار می کنید. و نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. و ما از شما به او نزدیک تر هستیم، ولی شما نمی بینید. فلولا این کنتم غیر پس اگر در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید ترجعونها این کنتم اگر راست می آن روح را بازگردانید فَأَمَّا اِن کَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس اما اگر آن شخص از مقربان باشد فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ پس در آسایش و ریحان و باغ بهشت پر نعمت است. و ان كان من صحاب المین واما اگر از اصحاب راست باشد فسلام لك من اصحاب المین پس به او گفته میشود سلام بر تو باد که از اصحاب دست راست هستی و اما كان من اگر از تکذیب کنندگان گمراه دست چپ باشد فنزل من حمید. پس با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود و تصلیه جحیم. و به آتش جهنم درآورده و سوزانده شود این هذا و حق یقین. بیگمان این خبر حق یقین است. فسبح اسم ربک العظیم. پس ای پیامبر. به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را به پاکی یاد کن. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای خدا تسبیح می‌گویند و او پیروزمند حکیم است لهو ملک السماوات والارض یحیی ومییت و هو علی کل شیء قدیر فرمانروای آسمان‌ها و زمین از آن اوست زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر چیز تواناست هو الاول و الاخر و وهو و و هو بكل شیء علیم او اول و آخر، و ظاهر و باطن است و او به هر چیز داناست هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَنِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ و الله تعملون بصیر او کسیست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستقر شد آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را که در آن بالا می رود می داند. و هر کجا باشید او با شماست و خداوند به آن میکنید بیناست لهو ملک السماوات والأرض و الله ترجع الأمور. فرمان آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به خداوند باز میگردد یولج لیل النهار و یولج النهار في الليل وهو علیم بذات الصدور شب را در روز داخل میکند و روز را در شب داخل میکند و او به آنچه در سینه هاست داناست آمینو بالله و رسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم وأنفقوا لهم اجر کبیر به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در آن جانشین قرار داده انفاق کنید پس کسانی که از شما ایمان آوردند و در راه خدا انفاق کردند برای آنها پاداش بزرگی است و ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم و قد اخذ میفاقكم این کنتم مؤمنین و شما را چه شده است که به خدا ایمان نمی آورید در حالی که پیام بر شما را می خاند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و به راستی اگر با بردارید از شما پیمان گرفته است وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفٌ رَّحِيمٌ او کسی است که آیات روشن بر بند می میکند تا شما را از تاریکی های کفر و شرک به سوی نور ایمان ببرد و یقینا خداوند نسبت به شما رعوف و مهربان است. و ما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 و الله بما تعملون خبیر و شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی کنید در حالی که میراس آسمانها و زمین از آن خداست کسانی از شما که قبل از فتح مکه انفاق کردند و با مشرکان جنگیدند با کسانی که پس از فتح انفاق کردند و جنگیدند یکسان نیستند آنها مقام و منزلتشان تر و برتر است از کسانی که بعد از فتح مکه انفاق کردند و جنگیدند و خداوند به هر یک وعده نیک داده است و خداوند به آنچه چه می‌کنید آگاه است من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم کیست که به خداوند قرض الحسنه دهد و در راه او انفاق نماید پس برای او دو چندانش کند و برای او پاداش ارجمند است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 ذلك هو الفوز العظيم. روزی که مردان و زنان مؤمن را بنگری که نورشان پیشا پیش آنها و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند. به آنها گفته می شود امروز شما را بشارت باد به باقهای از بهشت که نرها زیر درختان آنجاری است جاودانه در آن خواهید ماند این کامیابی بزرگی است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 فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِتُورِلَّهُ بَابٌ بَاقِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابِ روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند درنگی کنید و به ما بنگرید تا از نور شما پرتوی برگیریم گفته شود به پشت سر خودتان به دنیا بازگردید پس در آنجا نور بجویید پس دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد درونش رحمت است و از سمت بیرونش عذاب است یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ نَكُمْ فَتَنَّتُمْ أَفُسَكُمْ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور منافقان آنها را صدا میزنند آیا ما با شما نبودیم مؤمنان میگویند آری ولی شما خودتان را به بلا افکندید و منتظر ماندید و شک آوردید و آرزوهای باطل شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریب کار شما را در برابر فرمان خدا فریب داد بل اليوم لا يخذل منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می شود و نه از کسانی که کافر شدند و جایگاه شما آتش جهنم است همان شایسته شماست و چه بد جایگاهی است الَم یَأْمَنِ الَّذِینَ آمَنُوا اغشع قلوبهم لذکر الله و نزل من الحق و لا یکونو کالذین الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقصد قلوبهم و منهم فاسقون آیا برای کسانی که ایمان وقتی آن نرسیده است که دلهایشان برای ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب آسمانی داده شد پس مدت زمان طولانی بر آنها گذشت آنگاه قلب‌هایشان سخت شد و بسیاری از آنها گناهکار و فاسقند ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بيننا لكم الايات لعلكم تعقلون بدانید که خداوند زمین را بعد از مردنش زنده میکند به راستی ما آیات خود را برای شما به روشنی بیان کردیم باشد که شما اندیشه کنید انَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لهم, لَهُمْ وَلَهُمْ بیگمان مردان و زنان صدقه دهنده و آنها که به خداوند قرض الحسن دهند برایشان دو چندان می شود و برای آنها پاداش ارجمندی است. و آمنوا بالله ورسله، اولئک هم الصدیقون. و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذين كفروا و الذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا و برانش ایمان آبردند آنها نزد پروردگارشان صدیقین و شهدا هستند، برای آنهاست پاداششان و نورشان، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تگذیب کردند، آنها دوزخی هند. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكافر في الأموال والأولاد کمثل غَيْثٍ اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ایلا متاع الگور. بدانید که زندگی دنیا تنها بازیچه و سرگرمی و تجمل و فخر فروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است همانند بارانی که روییدنیاش کشاورزان را به شگفت آورد سپس خشک شود بگونه ای که آن را زرد رنگ بینی، سپس خورد و به کاه تبدیل شود و در آخرت برای کفار عذاب سخت است و برای مؤمنان آمرزشی از جانب خداوند و خوشنودی است و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست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 والله ذو الفضل برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمانها و زمین است بر یکدیگر دیگر پیشی گیرید که آن برای کسانی که به خدا و پیام برانش ایمان آوردهاند آماده شده است این فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد، و خداوند دارای فضل عظیم است ما اصاب من مصیبت فی الأرض ولا فی انفسکم الا فی کتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد مگر پیشگان که آن را پدیدا بریم در کتاب لوح محفوظ نوشته است مسلما این امر بر خداوند آسان است لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم والله لا يحب كل مختال فخور این را بیان کردیم تا به خاطر آن چه از دستان رفته است افسوس نخورید و به آنچه خداوند به شما داده است شادمان نشوید و خداوند هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ همان کسانی که بخیل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل فرمان می‌دهند و هر کس که از فرمان الهی روی گردان شود پس بداند که خداوند بینیاز ستوده است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 فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز پرستی که پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم، تا مردم به ادالت قیام کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است، و تا خداوند معلوم بدارد چه کسی به او و پیام را یاری میکند کند، بیگمان خداوند توانای پیروزمند است. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُلِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَاسِقُونَ وَبِرَاسْتِمَا نُوح وَإِبْرَاهِيمَ رَا فِرِسْتَادِیمْ و در دودمان آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم پس بعضی از آنها هدایت یافتهاند و بسیاری از آنها بدکار و فاسق اند ثم قفینا علی آثارهم بی رسولنا و قفینا بی عیس و آتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورحمة ورهبانية لبتدعوها ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم.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 سپس در پی آنها پیام بران دیگر خود را فرستادیم و بعد از آنان ایسا پسر مریم را آوردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند رعفت و رحمت قرار دادیم و رحبانیتی که خود آن را پدید آوردند ما بر آنها مقرر نداشته بودیم گرچه هدفشان به دست آوردن خوشنودی خداوند بود ولی چنانکه که باید حق آن را رعایت نکردند لذا ما به کسانی از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از آنها بدکار و فاسقند. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله غفور رحيم ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و به پیام برش ایمان بیاورید تا دو بهره از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید و گناهان شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است لئلا يعلم أهل الكتاب ألا لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله این را بیان کردیم تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خداوند نیستند و آنکه فضل به دست خداست و به هر کس که بخواهد آن را می دهد و خداوند دارای فضل بزرگ است